چیزی خندهدارتر از بدبختی نداریم سلام شما قسمت بیستم پادکست الف آخرین قسمت فصل دوم را میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است می‌شنام که در این قسمت خواهید شنید در انتظار گدو اثر ساموئل بکت بکت در سال 1906 در روستایی نزدیک دوبلین پایتخت ایرلند به دنیا آمد در بچگی به موسیقی و ورزش کریکت علاقه داشت سال 1923 وارد کالج شد و تا سال 1927 اونجا به تحصیل ادبیات مدرن زبان‌های فرانسه و ایتالیا و همینطور بازی کرکت پرداخت سال 1927، بکت با معدل عالی از کالج فرانسه تحصیل شد و برای ادامه زندگی به پاریس مهاجرت کرد. اینو می‌دونیم که پاریس اوایل قرن بیستم مهد ادبیات، فلسفه و هنره. خیلی از کسایی که توی این زمینه‌ها حرفی برای گفتن داشتن اون زمان توی پاریس زندگی می‌کردند. مثلا جان پول سارت، سیمون دوبوار، آلبرکامو، سالوادور دالی، پیکاسو، همینگوی و جیمز جویس. بکت هم وقتی به پاریس اومد دستیار جیمز جویس شد که اون ایرلندی بود و همون زمان بکت تصمیم گرفت وارد دنیای ادبیات بشه. اما برای این هدف راه سختی رو طی کرد و شکستای زیادی خورد که البته همین بدبختی ها کلی روی قلم و آثارش تأثیر گذاشت. بکت، کارش رو با مقالات تحلیلی رو آثار های دیگه مثل همین جیمز جویس و مارسل پروس چور کرد و سال 1932 اولین رمانش رو بالاخره نوشت به اسم Dream of Fair to Middling Women که بعد ها تو یک مجموعه داستان منتشرش کرد سال 1936 رمانی نوشت به اسم مورفی که 42 بار قبل از انتشارش تا سال 1938 رد شد یعنی توی دو سال چهل و دو بار جای مختلف این رمان رو رد کردن این رمان شد اولین اثر منتشر شده بکت تو همین سال 1938 بکت یه بار چاقو خورد و تو بیمارستان بستری شد و این باب آشنایی رو با خانمی به اسم سوزان که فامیلیش خیلی سخته براش باز بازگرد البته قبلش مختصری همدیگر رو میشناختن اما اون موقع رابطه ای رو با هم شروع کردن که تا آخر عمر بکت ادامه داشت. با اشغال پاریس در سال 1940 توسط نازی ها بکت به نیروی زمینی مقاومت پاریس پیوست و اونجا به عنوان تلفونچی مشغول به کار شد. شاید یادتون باشه که آلبرت کامو هم تو همین سازمان فعالیت می کرد. تو سال 1942 بکت و سوزان مجبور میشن از پاریس فرار کنن و مخفی بشن. و تو همین دوران فرار، بکت رمان دومش وات یا وات رو مینویسه. W A T T. بعد از جنگ وقتی بکت دوباره به پاریس برمیگرده، احساس میکنه که خیلی زیر سایه جویسه و برای عوض کردن این وضعیت در نوشتنش تغییر بزرگی ایجاد میکنه. و اون همین بود که کارهاش رو از اونجا به بعد به زبان فرانسوی نوشت. به نظر میاد واقعا انتخاب خوبی بوده چون تو پونزده سال بعد از این تصمیم بکت کارهایی رو می نویسه که تبدیل میشن به معروف ترین و موفق ترین آثارش. از جمله نمایش نماهایی در انتظار گدو، نمایش که قرار امروز بشنوید، مرحله آخر یا اندگیم، روزهای شاد و های سگانه معروفش، ملوی و بعد مالون می میرد و آن نیمبل. من معادل فارسی خوبی برای Unnameable پیدا نکردم نمایشنامه تراژدی کمدی در انتظار گدو که در سال 1948 نوشته شد یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین نمایشنامه های کل قرن بیستمه که همون زمان هم با موفقیت های بسیاری همراه بود نمایشنامه اولین بار سال 1953 در پاریس روی صحنه رفت و سال 1955 در لندن و به زبان انگلیسی اجرا شد. در انتظار گودو در کنار کارهای چند نویس دیگه در دهه های چهل و پنجاه میلادی اساس تئاتر ابزورد میدونن که تئوریش اینه که آثار در واقع جلوه تئاتری و نمایشی همون مقاله معروف آلبرت کامو افسانه سیزیف هستند که خودش اساس ابزوردیسم حساب میشه. انتهای این قسمت بیشتر در این مورد حرف میزنیم. این قسمت آخرین قسمت از فصل دوم پادکست علفه. پادکست ما دو ساله شد. سعی کردیم همیشه دقیق و منظم و سر وقت اپیزودهای علف رو منتشر کنیم و های بیشتری به نامه و تئاتر و ادبیات علاقه‌مند کنیم. این هدف ما بود که حس می کنم با توجه به تیم بزرگی که الان داریم و افزایش تعداد مخاطبانمون، داریم بهش می‌رسیم. فصل سوم پادکست علف خیلی زود شروع میشه تو های اجتماعی در روش تلارسانی میکنیم داریم روی کلی نمایشنامه‌ی ارزشمند برای فصل بعدی علف کار میکنیم که امیدواریم بتونیم کیفیت کار رو هم حفظ کنیم و البته بهترش کنیم و شما هم راضی باشید. از سعیده جهان دیده نویسنده متن این اپیزود، مهدیث سفری همراه همیشگی این پادکست که این متن اپیزود رو هم ویرایش کرده و سینا سعیدی تدوینگر این قسمت ممنونم بدون این بچه ها و بچه های دیگه که دارن با پاتکست علف کار میکنن ساختن این پادکست غیر ممکنه و خیلی خوشحالم کنارم هستند متن این اپیزود از روی ترجمه علی اکبر علیزاد از نشر بیدگل نوشته شده که لینک خرید نمایشنامه رو در توضیحات اپیزود قرار میدم بریم سراغ در انتظار گدو اثر ساموئل بکت غروب یک روز معمولی در کنار جاده بیرون شهر جایی که بجز یک درخت کاملا بیبرگ و یه تل سنگی کوچیک چیز دیگه ای نیست، استراگون روی تل نشسته و تلاش میکنه پوتینش رو از پاش در بیاره با هر دو دست پوتین رو میکشه خسته شده نفس نفس میزنه بعد دست از تلاش میکشه یکم استراحت میکنه دوباره شروع میکنه به کلنجار رفتن با پوتینش که اینجا ولادیمیر وارد میشه استراگون میگه اه هیچ کاری نمیشه کرد ولادیمیر میگه من تازه دارم به این نتیجه میرسم که هیچ کاری نمیشه کرد تمام عمر سعی کردم این فکر رو از خودم دور کنم به خودم گفتم ولادیمیر عاقل باش تو که هنوز همه چیز رو امتحان نکردی و دوباره مبارزه رو از سر گرفتم بعد از استراگون میپرسه شب رو کجا استراگون میگه داخل راهاب. ولادیمیر میگه که دوباره کتکت زدن. کتک هم زدن؟ معلومه که زدن. همون دسته همیشگی بودن؟ همونا نمیدونم. ولادیمیر میگه خوب که فکرشو میکنم میبینم این همه سال اگه من نبودم تو تا حالا هفت تا کفم پوسونده بودی. خب برای آدم این خیلی بار سنگینیه ولی الان دیگه دل شدن فایده نداره. باید اواخر قرن 19 وقتی دنیا جوان بود به این قضیه فکر می کردیم. دست در دست هم جز نفرات اول از بالای برجه ای فل خودمون رو پرت می کردیم پایین. حالا دیگه خیلی دیر شده حتی اجازه نمیدن ازش بالا بریم. استراگون پوتینشو رو پاره میکنه با ضعف میگه کمکم کن. ولادیمیر می پرسه درد داره استراغون با عصبانیت جواب میدهد درد داره یه چیزی میگه ولادیمیر میگه که هیچ کس به جستو درد نمیکشه. هیچ کس به جستو درد نمیکشه. من حساب نیستم. دوست داشتم بدونم اگه درد منو داشتی چی میگفتی. استراگون میگه چرا کمک نمیکنی؟ ولادیمیر به فکر فرو میره. یه وقتایی حس می کنم بالاخره داره سر میرسه. بعد میزنم گند همه چیزو در میارم. کلاهشو برمی داره، توشو نگاه میکنه و دست میکشه، بعد تکونش میده و باز میذاره روی سرش. چطور بگم خلاص و متوحش آره متوحش مزز هیچ کاری نمیشه کرد استراگون با تلاش فراوان بالاخره موفق میشه پوتینشو رو در بیاره پوتینش وارونه تکون میده و زمین رو نگاه میکنه تا ببینه از توش چیزی میفته یا نه اما چیزی پیدا نمیکنه ولادیمیر میگه که فرض کن توبه کردیم. اسراگون میگه از تولدمون ولادیمیر ناگهان میزنه زیر خنده اما فوراً قورتش میده. با دستاش استخون شرمگاهش رو فشار میده و چهرهش هم میره و میگه آدم حتی جرئت نمیکنه زیاد بخنده. فقط لبخند. نیشش رو تا بناگوش باز میکنه بعد با دست نگهش می داره. اما اینگار که لباش کش اومده باشه زود خسته میشه و لبخندش هم خیلی سری محف میشه. بعد ادامه میده که تازه همون هم نمیشه. هیچ کاری نمیشه کرد. گوگو، تو تاالا کتاب مقدس رو خوندی انجیلا رو یادته؟ داره به استراغام میگه گوگو. استراغام میگه که نقشه های عرض مقدس رو یادمه. بحر به رنگ آبی کمرنگ بود، تا نگاهش میکردم تشنم میشد. به خودم میگفتم این همون جاییه که باید بر ماه اصل بریم. ولادیمیر میگه که باید شاعر میشدی تو. اسراگون به لباسهای کوهنش اشاره میکنه. بودم. مگه معلوم نیست؟ ولادیمیر میگه کجا بودم؟ آهان اینو برای این پرسیدم که اینو بگم داستان دو تا دوز رو یادته؟ اسراگون میگه نه. ولادیمیر میگه که میخواست تعریف کنم که دراگون باز جواب میده نه اما ولادیمیر اصلا اهمیت نمیده و میگه برای گذروندن وقت خوبه بعد شروع میکنه به تعریف کردن دو تا دزد بودن که همزمان با ناجی ما مسلوب شدند یکیشون ظاهرا نجات پیدا کرد اون یکی م... به لعنت گرفتار شد اما چطوره که از 4 تا انجیل نویس فقط یکی از دزدی که نجات پیدا کرده حرف میزنه هر چهار تاشون همونجا بودن اما فقط یکیشون میگه یکی از دوستان نجات پیدا کرد از اون ستای بقیه دو نفرشون به هیچ فردی اشاره نمیکنه کنه و سوومی هم که میگه هر دو تا دزد به ناجی فحش دادن چون اونا رو نجات نداد استراگو میگه از جهنم ولادیمیر میگه کودن از مرگ از مرگ استراگو میگه خب اشکالش چیه ولادیمیر میگه آخه, آخه یکی از هفواری ها میگه یکی از دوستان نجات پیدا کرد هر چهار نفر اونجا بودن اما فقط یکی از دوستی که نجات پیدا میکنه حرف میزنه چرا فقط حرف اینو قبول دارن؟ استراغام میگه خب چه فرق میکنه چیو قبول دارن؟ این مردم که فقط یه مشت میمونه نفهمن بعد با درد از جا بلند میشه و لنگان به سمت چپه صحنه میره دستشو سایبان چشماش میکنه به دور دست بعد میره سمت راست سحنه دوباره همون کار میکنه یعنی به دور دست نگاه میکنه میگه چه جای قشنگی چه مناظر الهام بخشی بیا بریم ولادیمیر میگه نمیتونم منتظر گدویم استراغام میگه مطمئنی همینجا باید منتظر میموندیم ولادیمیر میگه گفت کنار درخت استراغام میگه به نظرم بیشتر به بوته میخوره ولادیمیر میگه درخت چه بوته میگه می میخوای بگی محل و اشتباه اومدیم؟ نه باید همین جا باشه اگه نیومد چی؟ وادیر میگه خب فردا برمیگردیم اسراگان جواب میده و خب پس فردا همینطور الخر تا موقعی که بیاد آخه دیروز اومدیم اینجا ولادییر میگه نه اشتباه میکنیم اسراگون میگه پس دیروز چیکار می کردیم؟ اگه دیروز اومده و ما نبودیم مطمئن باش امروز دیگه نمیاد میگه می ولی تو که میگی دیروز اینجا بودیم استراگون میگه شاید اشتباه کرده باشم. بیا یه دقیقه ساکت باشیم. میره روی تل میشینه و خوابش میبره ولادیمیر که به یکم قدم میزنه بعد میره استراگون رو صدا میزنه استراگون وحشت زده از خواب میپره و وقتی متوجه موقعیت میشه سرزن شامیز میگه که چرا نمیذاری چرت بزنم؟ ولادیمیر میگه احساس تنهایی میکردم استراگون میگه داشتم خواب میدیدم ولادیمیر میگه خب واسم تعریف کن. استراگون میگه دیدی اگه من کابوسای خصوصیمو واسه تو تعریف نکنم واسه کی تعریف کنم این دیدی هم چیزیه که استراگون به ولادیمیر میگه ولادیمیر میگه که بذار خصوصی بمونن میدونی که من طاقتشو ندارم استراگون میگه گاهی،, گاهی فکر می کنم بهتره ما دوتا از هم جدا بشیم ولادیمیر میگه جای دوری نمیری و از صحنه خارج میشه استراگون بلند میشه و دنبالش میره و شبیه تماشاگرایی که یک مشت زن رو تشویق میکنن از خودش حرکاتی بروز میده. ولادیمیر وارد میشه. از کنار استراگون رد میشه و با سر خمیده عرض صحنه رو طی میکنه. استراگون یه قدم به سمتش بر میداره و میگه میخواستی با من حرف بزنی؟ ولادیمیر بدون اینکه برگرده جواب میده من چیزی ندارم بهت بدم. استراگون میگه دلخوری؟ منو ببخش دیدی؟ دستتو بده به من. ولادیمیر برمیگرد. استراگون میگه بغلم کن. ولادیمیر نرم میشه و همدیگر رو در آغوش میگیره استراگون خودش رو عقب میکشه و دماغش رو چین میندازه. میگه که بوی گند سیر میدی. بلادیمیر جواب میده برای کلیه ها خوبه. حالا چیکار کنیم؟ استراگون میگه چطور خودمون رو دار بزنیم؟ بلادیمیر میگه شاخه به سمت درخت میره. چککش میکنه بعد میگه بهش اعتمادی نیست استراغام میگه میشه امتحان کرد ولادیمیر میگه برو جلو تو از من صبورتری استراغام میگه دنه ده عقل تو به کار بگیر گوگو سبکه شاخه نمیشکنه گوگو میمیره دیدی سنگین شاخه میشکنه دیدی تنها منظورش اینه که گوگو سبوکه شاخه نمیشکنه گوگو میمیره بعد دیدی چون سنگینه شاخه میشکنه بعد دیدی تنها میمونه اگه این درخت بتونه تو رو آویزون نگه داره منم میتونه. بلادیمیر میگه به اینش فکر نکرده بودم. حالا چیکار کنیم؟ استراغام میگه بیایش کاری نکنیم. اینجوری خطرش کمتر. بلادیمیر میگه بذار منتظر بمونیم ببینیم گودو چی میگه. منتظر میمونیم تا وقتی تاپ میاریم. دوست دارم ببینم دقیقاً چه پیشنهادی میده. بعد یا قبول میکنیم یا رد. استراگون میگه ما دقیقاً ازش خواستیم چیکار کنه واسمون. ولادیمیر جواب میده ها خیلی چیز مشخصی نبود یه جور دعا اسراگون میگه که چی جواب داد ولادیمیر میگه گفت حالا ببینم چی میشه استراگا میگه ما چی کار ما به کجا میکشه تکلیفمون چی میشه ولادیمیر میگه میافتیم رو 14 و پامون آلی جناب میل دارن از حقوق قانونی خودشون استفاده کنن استراگون میگه یعنی ما هیچ چقی نداریم ولادمیر میخنده اما عین قبل قورتش میده و فقط لبخند رو لبش میمونه بعد میگه اگه خنده ممنوع نبود از حرفات خندم میگرفت استراغام میگه یعنی ما حقوقمون از دست دادیم ولادمیر سرتکن میده میگه از شرشون خلاص شدیم یا هرداشون ساکت میشن و سرجاشون خشکشون میزنه به دقت گوش میدم ببینن صدایی میاد یا نه استراغام میگه من که چیزی نشنیدم ولادیمیر میگه بعد با هم به صداهای اطراف گوش میدن. استراغون تعادلش رو از دست میده و به بازوی ولادیمیر چنگ میزنه. ولادیمیر بیخیال میشه میگه خب من هم چیزی نمیشنوام. آهی از سر خلاصی میکشن و از هم فاصله میگیرن ولادیمیر میگه فکر کردم گدوه. استراغون میگه زک. باد بود که لای نیها پیچید. من گرسنمه. ولادیمیر میگه هویج میخوای؟ استراگون میگه فقط همینو داریم. ولادیمیر میگه شاید چند تا شلغم هم داشته باشیم. یه هویج بده. ولادیمیر توی جیباشو میگرده و یه شلغم در میاره میده به استراگون. استراگون گازش میزنه و با عصبانیت میگه این که شلغمه. ولادیمیر میگه عبه انگار هویج بود. دوباره جیباشو میگرده و چیزی جز شلغم پیدا نمیکنه. رو به میگه همش شلغمه. سابگون کن، هم هست بیا رفیق شفیقم استراگون هویج رو میگیره و با آستینش پاک میکنه و شروع به خوردن میکنه ولادیمیر میپرسه چطور هویجش استراگون میگه هویجه با قدردانی به هویج نگاه میکنه و اونو بین 60 انگشتش آویزون نگه میداره هیچ وقت این هویج فراموش نمیکنم آها یادم اومد چی میخواستم بگم ما رو که نبستند به چیزی یا کسی به همون مرده ولادیمیر میگه به گدو به گدو ن چه فکری سوال بی سوال استراگام میگه اسمش گدوه باقی مونده هویجو از ساق میگیره و جلوی چشمش تکون میده خنده داره هرچی بیشتر میخوری بدتر میشه ولادیمیر میگه در مورد من دقیقا برعکس هرچی جلوتر میرم به آشغال بیشتر عادت میکنم استراگون بعد از اینکه کلی فکر میکنه میپرسه این یعنی برعکس ولادیمیر میگه به طبع آدم برمیگرده به شخصیتش نمیشه کاریش کرد. آدم همونی هست که هست. ذاتش عوض نمیشه. استراگون میگه هیچ کاری نمیشه کرد. صدای فریاد وحشتناکی از فاصله نزدیک شنیده میشه. استراگون هویجو پرت میکنه هر دو تا بی حرکت میمونن و یهو با هم به سمت انتهای صحنه هجوم میبرن. استراگون وسط راه میمونه برمیگرده هویجو برمی میذاره می جیبش و میدوه سمت ولادیمیر که منتظره. باز برمیگرده این بار پوتیناشو برمی داره میره سمت ولادیمیر از ترس به هم میچسبن و منتظرن پوتزو و لاکی وارد میشن پوتزو با تنابی که به گردن لاکی انداخته هدایتش میکنه تناب اونقدر بلنده که قبل از اینکه پوتزو روی صحنه ظاهر بشه لاکی میرسه به وسط صحنه تو دستای لاکی یک چمدون سنگین یک چهارپایه تاشو یک سبد پیک و یک پالتو پوتسو هم یه شلاق توی یکی از دستاش داره. لاکی از جلوی استراگون و ولادیمیر رد میشه و از اون طرف صحنه میره بیرون. پوتسو که این دو رو میبینه وای میسه و تناب کش میاد. پوتسو با خشونت تنابو میکشه. یه برگرد. صدای افتادن لاکی با تمام اسباب اساسی ها شنیده میشه. ولادیمیر و استراگون میچرخن سمت لاکی. شک دارن که کمکش کنن یا نه. اما میترسند دخالت کنه. ملادی ولادیمیر به سمت لاکه قدم برمی داره که استراگون آستینشو میگیره و اونو میکشه عقب. پوتسو میگه مواظب باشین. خیلی چموشه. منظورم با غریبه هاست. استراگون میگه همونه خودشه. پوتسو میگه خودم معرفی میکنم. پوتسو اسراگون با خجالت میپرسه شما آقای گودونش سین پوتزو با صدای ترسناک میگه من پوزو هم پوزو وقتی میبینه این دوتا جواب نمیدن با آبوتاب میگه این اسم واسطون آشنا نیست بلادیمیر و استراغون با حالتی آمیز همو نگاه میکنن و جوری وانمود میکنن که انگار در حال فکر کردن استراگون میگه پوزو پوزو آها پوزو بلادیمیر میگه پوتسو یا پوتسو استراگون میگه پوتسو من این خانواده میشناسم به اسم گوتسو مادرشون زیگیل داشت پوتسو که با حالتی تهدیدآمیز جلو میاد وای میسه بعد با جدیت میپرسه گودو کیه که شما منو باهاش اشتباه گرفتین استراگون میگه نه قربان یه لحظه هم اشتباه نگرفتیم پوتسو میگه کی هست ولادیمیر میگه یه جور آشناست استراگون میگه اصلا همین جور نیست من یکی حتی اگه ببینمش نمیشناسمش پوتسو میگه شما منو باهاش اشتباه گرفتین. استراگون روبروی پوتسو میشینه و میگه میدونین تاریکی و خستگی و انتظار یه لحظه همش یه لحظه فکر کردم پوتسو میگه انتظار پس شما اینجا توی ملک من منتظرشین ولادیمیر میگه ما هیچ قصد بدی نداشتیم. پوتسو میگه هوم اما به هر حال اینجا این. استراگون میگه نمیشه کاریش کرد. پوتسو با ژست سخاوتمندانه میگه دیگه از خیر این موضوع بگذریم تنابو میکشه بعد به لاکی میگه بلند شو خوک هر دفعه میفته خوابش میبره صدای بلند شدن لاکی به گوش میرسه که داره وسیله هاش هم جمع میکنه پوتسو رو میکنه به ولادیمیر و استراگون میگه آقایون خوشوقتم که شما رو ملاقات میکنم تنابو میکشه و میگه نزدیکتر لاکی میره جلو و پوتزو بهش دستور میده کت. لاکی چمدون رو روی زمین میذاره. میره جلو کت رو میده و بر میگرده سر جاش و چمدون رو بر میداره. اینو نگه دار. پوتزو شلاغ دراز میکنه و چون هر دو دسته لاکی پره شلاغ رو با دندون میگیره و میره سر جاش. پوتزو میگه امشب حال و هوای پاییزو داره. دکمای کتشو میبنده و شق و رق میسته. چارپایه لاکی وسیله ها رو میذاره زمین جلو میره چارپایه رو باز میکنه بر میگرده و وسیله ها رو بلند میکنه پودزو میگه نزدیکتر لاکی دوباره همون کار رو تکرار میکنه پودزو میشینه دست شلاغ رو روی سینه لاکی میذاره و به عقب هلش میده روب استراگون و ولادیمیر میکنه و میگه با اجازهتون قبل از ماجراجوی های بیشتر میخوام یه کمی با شما وقت بگذرونم بعد با داد به لاکی میگه سبد لاکی میره جلو سبت رو تحویل میده و برمیگرده سریجاش پودسو میگه هوای خوب اشتهای آدم و حسابی باز میکنه. بعد در سبت رو باز میکنه و یک تیک مرغ یک تیک نون و شراب در میاره. ولادمیر و اول با احتیاط بعد با جرأت بیشتری دور لاکی چرخ میزنن از بالا تا پایینشو برانداز میکنن. پوتزو که حریسان مشغول خوردن مرغه بعد از اینکه که استخونا رو لیس میزنه اونا رو دور میندازه لاکی کم کم وامیره تا جایی که چمدون و سبد با زمین تماس پیدا میکنن بعد از جا میپره و دوباره وامیره مثل کسی که سرپا خوابش برده استراغان و ولادیمیر پچ پچ میکنن که این چشه ولادیمیر میگه انگار خسته است استراغان میگه چرا باراش رو زمین نمیذاره ولادیمیر میگه از کجا بدونم. نگاه به گردن لاکی اشاره میکنه. استراغان میگه جای تنابه. نه سایی همینطور که دارن بررسیش میکنن متوجه صورتش میشن. ولادیمیر میگه وقت به نظر نمیرسه. استراغان که انگار خیلی موافق نیست میگه نظرت اینه. ولادیمیر میگه یه کمی اواخاهره شاید کم داره. استراغان میگه به نظرم نفسهای آخرشه. ولادیمیر میگه معلوم نیست یه چیزی ازش بپرس استراغون با ترس صدا میزنه آقا پوتسو با داد راحتش بذاری نمیبینید میخواد استراحت کنه کبریتی آتش میزنه تا پیپش رو روشن کنه لاکی یا رو میبینه و حریسانه بهشون ظلم میزنه چون حرکت نمیکنه با عصبانیت کبریت رو دور میندازه و تناب رو میکشه سبد خوک لاکی تقریبا میفته و هوشیار میشه. بطری رو داخل سبد میذاره و برمیگرده سر جاش. استراگون به استخون‌ها خیره شده. آقا کار شما با این یعنی شما به این استخون‌ها احتیاجی ندارید قربان. بلادمیر با این میگه نمیتونیسی صبر کنی. پوتسو میگه نه نه خوب شد که پرسیدید. من شخصا بهشون احتیاجی ندارم ولی استخونا به این هممال میرسه. پس از اون باید بپرسید. استراغون به سمت لاکی میره. مردد میگه آقا ببخشید آقا پوزو میگه که دارن با تو صحبت میکنن. خوک جواب بده. استراغون باز میپرسه ببخشید آقا شما به این ها احتیاجی ندارین. لاکی نگاهی طولانی به استراغون میکنه. پوزو با سرخوشی به لاکی میگه آقا جواب بده. اونا میخوای یا نه؟ لاکی بازم حرفی نمیزنه. پوزو به استراغون میگه مال تو. اسراگون خیز بر میداره سمت سخونه برشون میداره و مشغول جویدن میشه و سخونه همون مرگی که پو داشت میخورد. ولادیمیر میگه که مایه ننگ سکوت برقرار میشه. اسراگون مپوت از جویدن دست میکشه و به پوز ولادیمیر نگاه میکنه. ولادیمیر مسمم ولی با لکنت زبان به لاکی اشاره میکنه. این طرز رفتار با یه آدم با یه انسان چنین رفتاری با یک انسان مایه ننگه پوچو میگه شما خیلی سخت میگیرین چند سال دارین؟ شهست؟ هفتاد؟ از استراغو میپرسه فکر میکنید اون چند سالش باشه؟ استراغو میگه یازده پوچو میگه بیادبی کردم دیگه باید برم اما اینگار خیلی هم دلش نمیخواد بره و مایله که اونا ازش بخوان که بیشتر بمونه اما کسی چیزی نمیگه اسراگان و سخون ها رو درجیبش میذاره و میگه به این زودی پوو میگه امیدوارم من باعث رفتنتون نشده باشم یکم کمی سب کنی پشیمون نمیشید شروع میکنه پیپش رو پر کرده اسراگان که بوی صدقه به مشامش رسیده میگه نه عجله نداریم اما ولادیمی راه میفته که بره پوزاو میگه دیگه نمیتونه حضور منو تحمل کنه شاید من آدم فوق العاده ای نباشم ولی کی اهمیت میده بعد رو میکنه به و حرفش رو ادامه میده یه بار دیگه قبل از اینکه کار عجولانه ای بکنی فکر کن فرض کن همین الان در حالی که هنوز روزه رفتین اون وقت قرارتون با این گوده گودو یا گودین چی میشه میدونی که منظورم کیه همون که آینده شما اون دستشه. شه لاقل آینده نزدیکتون ولادمیر میگه که اینو از کجا میدونی پوتزو با سرخوشی میگه بازم با... بازم با من حرف زد همین جوری پیش بره خیلی زود با هم صمیمی میشیم. استراگون به لاکی اشاره میکنه. میگه که چرا اون بارش رو زمین نمیذاره؟ پوتزو بی بی‌توجه به و راجی میکنه. خیلی خوشحال میشم با این آدم ملاقات کنم. منظورش گدوه. هر چه آدم‌های بیشتری ببینم بیشتر خوشحال میشم. کسی چه میدونه؟ حتی شما هم ممکنه به اندوخته من اضافه کرده باشیم. اسراگون دوباره سوالش رو تکرار میکنه که چرا لاکی باراش رو زمین نمیذاره؟ پوتسو میگه یه لحظه پیش به من میگفتین قربان اونم با ترسولر حالا از من سوال میکنین اصلا جالب نیست ولادیمیر به سراغم میگه که از خود لاکی بپرس پوتسو که شاهد مکالمه شونه شروع میکنه به گفتن خب همه حواسشون به من هست خوک حواست به من هست یا نه لاکی بهش نگاه میکنه پوتسو پیپش رو میذاره جیبش اسپری رو از جیب در میاره گلوش رو تر میکنه باهاش اسپری میذاره جیبش توف میکنه دوباره اسپری رو برمی داره باز گلوش رو تر میکنه و باز دوباره میذاره جیبش من حاضرم همه گوششون به منه شما دقیقاً چیو میخواستین بدونی ولادیمیر شروع میکنه به گفتن سوالش چرا اون پوتسو با عصبانیت میگه وسط حرف من نپرین اگه با همه با هم صحبت کنیم که به جایی نمیرسیم چی میگفتم ولادیمیر ادای کسی رو در میاره که بار سنگینی رو حمل میکنه پودزو میگه آها سوالتون اینه که چرا اون به خودش استراحت نمیده آیا حق این کارو نداره قطعاً داره در نتیجه خودش نمیخواد حالا چرا نمیخواد میخواد منو تحت تاثیر قرار بده تا نگهش دارم میخواد دل منو به دست بیاره تا به فکر ول کردنش نیفتم فکر میکنه وقتی ببینم هممال خوبیه نگهش میدارم سراگون میگه یعنی دیگه خسته شدی از دستش میگه راستش مثل خوک بار میکشه ولی کارش این نیست. فکر میکنه وقتی ببینم خستگی سرش نمیشه تصمیمم رو عوض میکنم. انگار برده برای من قحته. هر سه به لاکی نگاه میکنه ولادیمیر میگه می‌خاین از دستش خلاص بشین؟ پوتسو میگه یادتون باشه که ممکن بود من جای اون باشم و اون جای من. اگر بخت غیر از این بود. به هر حال حق به حقدار میرسه. ولادیمیر دوباره میپرسه می‌خاین از دستش خلاص میگه بله. ولی به جای این که یه لگت بزنم در کونش بندازمش بیرون به خاطر قلب رعوفم میبرمش بازار بلکه به قیمت خوبی بفروشمش. راست شما نمیتونین از شر این جور موجودات خلاصشین. بهترین راه اینه که اونا رو بکشین. لاکی گریه میکن. پودسا میگه سکهای پیرم شرفشون از این بیشتره. دستمالشو به سمت استراغان میگیره و میگه حالا که دلت براش میسوزه بیارومش کن بعد ولادمیر میگه که بدش من خودم این کار میکنم. اسراگون دستمال به ولادمیر نمیده و اتواری بچه گونه در میاره. پودزو میگه زود باشین تا ساکت نشده. اسراگون نزدیک لاکی میره تا عشقاشو پاک کنه. لاکی با خشونت لگد محکمی به ساق پاش میکوبه. اسراگون دستمال عقب میندازه عقب میره و با درد دور سحن تلو تلو میخوره. پودزو داد میزنه دستمال! لاکی چمدان و سبد و زمین میذاره، دستمال رو بر میداره و به پوتزو میده. بعد سر جاش بر میگرده و سبد و چمدون رو بر میداره. استراغون پاچه شلوارشو بالا میزنه، داره از پاش خون میاد و میگه آخ آخ آخ تخمه سگ، علیلم کرد. آیا آی آی آی دیگه هیچ وقت نمیتونم را برم. ولادیمیر با مهربونی بهش میگه اگه لازم شد من کولت میگیرم. پوتزو رو به استراگون میگه دیگه گریه نمیکنه حالا تو جاشو گرفتی. عشقهای دنیا کمیتی ثابت داره. هر کسی گریه کنه، جای دیگه یه نفر دست از گریه کردن بر داره. در مورد خنده هم همینطوره. <تصفيق> پس بیایید از نسل خودمون بد نگیم. چون از نسلتای قبلی اصلا بدتر نیست. زیاد هم تعریفشو نکنیم. اصلا ازش صحبت نکنیم. حقیقت اینه که جمعیت هم زیاد شده. استراغان لنگ لنگان قدم بر و بهش توف میکنه. بعد میره روی تل میشینه. پودزو میگه حدس بزنید این همه چیزهای خوب کی به من یاد داده؟ لاکی خودم. بدون اون همه افکار و احساساتم پیش و پا افتاده میشد. نگرانیهای های زیبایی، محبت، حقیقت ماده. میدونستم همه اینا دور از دسترس منن. به خاطر همین ضربه خوردم. قضیه مال شست سال پیشه. اصن به من نمیاد ها در مقایسه با اون جوون تر بنظر میرسم نه منظورش لاکی ولادیمیر میگه و حالا شما میخواین همچین نوکر پیرو وفاداری رو دکش کنین بعد از اینکه خوب شیره جونش رو مکیدید میخواین الان مثل پوست موز بندازینش دور واقعاً که سرش رو بین دو دستش نگه میداره و ناله میکنه دیگه تحملشو ندارم به هیچ وجه شما که خبر ندارید کارای که میکنه وحشتناک باید بره دارم دیوونه میشم بعد میفته زمین سرشو با دو تا دستش میگیره و میگه دیگه به هیچ وجه تحملشو نداره همه به پوزو نگاه میکنه لاکی داره میلرز لادیمیر به لاکی میگه چطور جرعت میکنی؟ عرباب به این خوبی بعد از این همه سال اینطوری عذابش میدی واقعا که پوزو با گریه میگه قبلن مهربون بود و سرگرم کننده بود فرشته خوبم بود ولی حالا داره دق مرگم میکنه آقای نمیدونم چرا اینطوری شدم درست یادم نیست که چی گفتم ولی مطمئن باشین یک کلمهش هم حقیقت نداشت به نظرتون آدمی مثل من رو میشه آزار داد روکراست بگین بعد داره توی جیبش دنبال پیپش میگرده میر که انگار دستشویی داره صحنه خارج میشه پوتزو که همچنان دنبال پیپش میگرده سرشو بالا میاره و متوجه نبود ولادیمیر میشه و میگه آه اون بدون اینکه که خداحافظی کنه رفته لاغل میتونه صبر کنه ولادیمیر عبوس وارد میشه و سر راهش به لاکی تنه میزنه و چهارپایه رو میندازه سراسیمه میاد و میره پوچو میگه حالش خوب نیست ولادیمیر با این میسه چهارپایه رو صاف میکنه و این بار آرومتر میاد و میره پوچو میگه آروم شد آرامش عجیبی حکم فرما شده. میگه می که پس کی شب میشه؟ پودزا میگه کاملا طبیعیه که دوست ندارید قبل از شب شدن را بیفتید. اگر من هم جای شما بودم و با این گوده، گودن، گودو، که هست میدونین که کیه؟ قرار داشتم قبل از اینکه تسلیم بشم میموندم تا کامل شب شه. یه نگاه به چارپایش میکنه و میگه خیلی دوست دارم بشینم. بلی خب چطور باید این کار بکنم؟ استراغام میگه من میتونم کمک کنم. پودزو میگه اگه خواهش کنید شاید. استراغام میگه اینجوری کمکتون کنم باشه. آقا استدعا دارم بشینید. پودزو میگه که نه نه میل ندارم. دوباره ازم خواهش کنید. استراغام میگه بفرمایید بنشینید. تمنا میکنم وگرنه زاتوریه میکنید. پودزو میگه راست میگید. بعد میشینه. چکررم دوست عزیز ولی اگه بخوام طبقه برنامهم پیش برم باید الان را بیفتم. ولادیمیر میگه زمان متوقف شده. پوتزو ساعتش رو به گوشش میچسبونه و میگه باور نکنید آقا باور نکنید. منظورش اینه که نه متوقف نشد. اسراگون با پوتینش ور میره و ولادیمیر با کلاهش مثل اول نمایش دامه. کلاه لاکی از سرش میافته بدون اینکه متوجه بشه پوتزو که این شرایط رو از جا بلند میشه و شاق و محکم. صدا میده. لاکی از جامی پر کلاه ولادمیر و پوتین استراگو میافتند زمین. استراگو میگه: "آقا التماس میکنم انقدر سرپا و این خودتون رو به کشتن میدینا." پوتسو میگه: "درسته. باید دوباره میشینه." از استراگو میپرسه: "اسم شما چیه؟" استراگو میگه: "آدم." پوتسو بدون اینکه گوش کرده باشه شروع میکنه به حرف زدن. "مرهمتی کنید و خوب باسمون با توجه کنید و الله به هیچ جا نمیرسیم." همه به غیر از لاکی که باز چرت میزنه باسمون نگاه میکنه. پوتسو تناب و میکشه خوک باسمون آسمون نگاه نمیکنی لا لاکی با آسمون نگاه میکنه پوتز و ادامه میده خب کافیه از نگاه کردن به آسمون دست میکشم و به پوتز گوش میدن. چه چیز ای توش داره شبیه به هر آسمون ای در این موقع روزه رنگ پریده و درخشانه در این عرض جغرافیایی وقتی هوا خوب باشه از ده صبح به بعد که سیل انوار قرمز و سپیدش باریدن گرفت کم کم درخشندگی خودشو از دست میده و رنگ میبازه رنگ میبازه میبازه تا اینکه آروم میگیره ولی در پس این پرده صلح و آرامش شب میتازه و بر سر ما منفجر میشه بام اینطوری درست وقتی که انتظارشو نداریم وز این مادسگ زمین از این قراره یک سکوت طولانی برقرار میشه بعد پوتسو دوباره میگه خب من رو چطور دیدید؟ خوب، عالی، قابل قبول، معمولی، خیلی بد ولادمیر زودتر متوجه منظورش میشه و جواب میده خیلی خیلی خوب بود پوتسو از استراغون میپرسه و شما چی؟ استراگون میگه خیلی چی بود خیلی خیلی چی بود پوتسو با هیجان میگه خدا عجرتون بده آقا. من به این تشویق نیاز داشتم. آخرش یکم زعیف شده و نشدین؟ استراگو میگه من فکر کردم عمدی بود. پوتسو میگه کسلتون کرد؟ استراغو میگه تا حتی. دوباره همه ساکت میشن. پوتسو که درگیره با خودش بلاخره میگه آقایان شما در مورد من شرط ادب رو رایت کرد. واسه همین از خودم میپرسم که کاری هست که بتونم به سهم خودم برای این دوستان شفیق که وقته کسل کننده ای رو میگذرونن انجام بدم. نسراغو میگه ما به یه شیلینگم رازیم. ولادیمیر میگه ما که گدا نیستیم. نسراغو میگه حتی شیش پنی. ولادیمیر با اصابانیت رو به اسراغو میگه بسه دیگه بسه. پوتسو میگه این کافیه قطعا. ولی من آدم استخابتمندیم. کدوم انتخاب میکنین؟ میخواین لاکی برامون برقصه بخونه دکلمه کنه یا فکر کنه یا ولادیمیر میر با تعجب میگه لاکی فکر کنه پودزو میگه معلومه با صدای بلند قبلا خیلی قشنگ فکر میکرد میتونستم ها بهش گوش کنم اما حالا بدتر از این نمیشه اگه متوجه شده باشید بجنگ که بهشون پول بده الان داره مثلا لطف میکنه و میخواد لاکی برای اینا یه کاری انجام بده استراگون ترجیح میده لاکی برقصه ولادیمیر فکر کردنش رو ترجیح میده بعد استراگون پیشنهاد میده که نمیتونه اول برقصه بعد فکر کنه البته اگه بهش فشار نیاد پوتسو میگه البته که میشه خوک اخته میشنوی لاکی کلاه و سبت رو میذاره زمین به سمت جلو حرکت میکنه برمیگرده به سمت پوتسو و وای میشه. یه بار دیگه لاکی و ثبت رو میذاره زمین به سمت جلو حرکت میکنه برمیگرده به سمت پوتسو و وای میسه این رقصیدنش بود استراگون میگه همش همین اینو که منم بلدم بعد ادای لاکیو در میاره اما نزدیکه که بیوفت پوتسو میگه که قبلا هر مدل رقصی بلد بود الان بهترین کاری که میتونه بکنه همینه میدونیم به این رقص شی میگن استراگون میگه شلنگ تخته ولادیمیر میگه بهش بگو فکر کنه پوتسو میگه رو بهش بده بدون کلاهش نمیتونه فکر کنه. ولادیمیر با استراغوم میگه که کلاه لاکیو بهش بده. استراغوم میگه من اونم بعد از اینکه این کارو باهام کرد عمرن خودش بره برداره. منظورش از اون کار اینه که زد تو پاش. ولادیمیر خودش کلاهو بر میداره و دستشو تا جایی که میتونه دراز میکنه تا کلاهو به لاکی بده. در حالی که هیچ تکونی نمیخوره. پوتسو میگه خودت باید بذاری سرش. ولادیمیر با احتیاط از پشت به لاکی نزدیک میشه کلاه روی سرش میذاره و سری برمیگرده. عقب پوتسو میگه فکر کن خوک لاکی شروع میکنه به فکر کردن با لحن یک نواخ پر از کلمات قلوم به سلوم ولی هیچ مفهومی نداره در واقع با حرف زدن داره فکر میکنه شروع میکنه به حرف زدن لاکی برای اولین بار شروع میکنه به حرف زدن از سوی دیگر با اطف توجه به فرض هستی آنگونه که در آثار پانچه رو واتمن در باب پروردگار شخصی فی فی فی نفسه باریش سفید آمده بیرون از زمان بدون امتداد از فراز بی مینوی اوج مینوی زمان پریشی به ما دارد با برخی استثناات به دلایلی ناشناخته ولی زمان نشان خواهد داد شبیه میراندای مینوی رنج بر خود همبار میکند ولایمیر و استراگون با دقت گوش میدن اما پوتسو او آشفته آشفت است و هی راه می رو به خودش می پیچه. لاکی دوباره شروع کنه و حرف زدن. عذاب شولور در آتش قوتورد چنان که ادامه آبد و کسب بتواند بدان شک کند افلاک را شولور خواهد کرد. به عبارتی آتش دوزخ را بهشت این چنین آبی تسری بخشد و آرام بدان حد آرام با آرامشی که حتی برغم آن ولادمی رو استراغون شروع می اعتراض کردن. نارایتی پوتسو بیشتر از جا میپره و تنابو میکشه همه فریاد میکشن لاکی تنابو میکشه و میخوره زمین ولی همچنان داره متنش رو ادامه میده پاورق از هر گونه شک و شقی از نقطه نظر تلاش مردان که به عنوان تلاش های ناتمام دو قوامیافته است آنچنان که از این پس ولی نه آنقدر سری به دلایل ناشناخته همه خودشونو میندازن روی لاکی و شروع میکنن به کتک زدنش اما لاکی با تلاش و تقلا همچنان ادامه میده در باب زلگاه ستون آن کسی که بتواند شک کند از تر میگیرم جمدیمه لرزیدن زبال ها و اخیدا همزمان با آنجا که بیشتر به دلایل ناشناخته به رقم تنیس در با به ریش آتش گروه ها پووتو نفس نفس زنان اشاره میکنه کلاهش کلاهش ولادمیر کلاه لاکی و میقاپ لاکی یه و ساکت و بیارکت میشه و روی زمین میفته. سکوت برقرار میشه و همه دارن به خاطر تقلی که به خاطر ساکت کردنلاکی کردن،, لاکی کردن. نفس نفس میزنن پوزو کله ها از ولادیمیر میگیره میندازه زمین و لگت مالش میکنه میگه اینم آخر واقعت فکر کردنش ولادیمیر میگه میتونه راه بره استراغون میگه شاید مرده پوزو میگه بلند چه کسافت تنابو میکشه و به ولادیمیر و استراگون میگه سرپاش کنید ولادیمیر و استراگون لاکیو رو پاهاش بلند میکنن یه لسنگهش میدارن بعد ولش میکنن لاکی نقش زمین میشه دوباره بلندش میکنن و این بار نگهش میدارن پوتسو چمدونو سبت رو بر میداره و به سمت لاکی میبره میگه محکم نگهش دارین چمدونو میده دست لاکی لاکی فوراً زمین میندازتش پوتسو دوباره سعی میکنه لاکی کم کم با لمس چمدون حشیار میشه و انگشتاش دسته چمدونو میگیرن پوتسو سبت رو هم به همین طریق میده دسته لاکی میگه حالا میتونین ولش کن استراغون و ولادیمیر از لاکی دور میشن. لاکی تلو تلو میخوره اما موفق میشه خودشو سرپا نگه داره. سبد و چمه دونم تو دستشه. پوزو میره اقب و رو صدا میده. برو جلو! لاکی یه قدم میره جلو. اقب! لاکی یه قدم میاد اقب. درست شد. حالا میتونه راه بره. متشکرم آقایون. اجازه بدید آرزو کنم... م... ام... تو جیباشو میگرده و متوجه میشه ساعتش نیست با قق میگه ساعتم رو چیکار کردم هدیه پدر بزرگم بود همه با هم میگردن دنبال ساعت اما چیزی پیدا نمیکنن پوتسو خم میشه و سعی میکنه گوشش رو به چسبونه به شکمش حتما صدای تیک تاکش رو میشنوید استراگون و ولادیمیر هم نزدیک میشن و گوششون رو میذارن رو شکم پوتسو استراگون میگه یه چیزایی دارم میشنوم ای بابا صدای قلب پوتسو میگه من باید برم استراگون میگه پس پترود پوتسو میگه پترود ولادمیر هم میگه پترود هیچ کی تکون نمیخوره ولادمیر و استراغان دوباره میگن پترود پوتسو هم میگه پترود اما بازم تکون نمیخورن پوتسو میگه ظاهرا نمیتونم ازتون دل بکنم بر میگرده از جلوی لاکی میشه و به سمت بیرون حرکت میکنه همینطور که میره سر تنابو شال میکنه ولادمیر میگه راهو دارید اشتباه میرید اما پوتسو میگه نه باید اول استارت بزنم. با آخر تناب میرسه و از صحنه خارج میشه وای میسته و شلاقشو صدا میده لاکی با شنیدن صدای شلاق به سمت بیرون حرکت میکنه پوتسو به دوال لاکی ارز صحنه رو ته میکنه یهو وای میسته و برمیگرده تناب کش میاد صدای افتادن لاکی از بیرون از صحنه شنیده میشه هم بالاخره میره استراغام میگه که حالا چی کار کنیم؟ بیا بریم ولادمیر میگه نمیتونیم منتظر گدویم ولادمیر میگه اون دوتا چقدر فرق کردن اینطور نیست تغییر کردن استراغام میگه به احتمال زیاد همه تغییر میکنن فقط ما نمیتونیم ولادمیر میپرسه مگه قبلا ندیده بودیشون استراغام میگه لابوت دیدم ولی نمیشناختمشون ولادمیر میگه چرا میشناسیشون تو همه چیز یادت میره منم وانمود کردم که نمیشناسمشون مگر اینکه اینا همونا نباشن استراگان یهو پاش درد میگیره اوه او دی دی, دی دی اون یکی پامه لنگ لنگان به سمت تل میره ولادمیر واکنش اینشون نمیده و باز خودش میگه مگر اینکه اینا همونا نباشن صدا پسر ای از خارج از صحنه میاد میگه که آقا هر دو به سمت صدا برمیگردن پسر ترسان وارد میشه پسر با ترس میگه آقای گودو لادمیر میگه از آقای گدو پیامی داری میگه چرا انقدر دیر کردی میدونی ساعت چنده پسره میگه تقصیر من نیست آقا ترسیده بودم آقا استراگون میگه از چی ترسیده بودی از ما چند وقت اینجایی پسره میگه خیلی وقت آقا ولادیمیر میگه اهل این طرفایی؟ پسره میگه بله آقا. استراگون میگه همش یموش دروغه. بازوی پسر رو میگیره و تکونش میده. راستشو بگو. پسره ترسیده. ولادیمیر استراگون رو دعوا میکنه. ولش کن، چه شده تو؟ استراگون پسر رو ول میکنه، میرقب و صورتشو با دستاش میپوشونه و با چهره درهم رفته میگه من آدم بدبختی هستم. ولادمیر میگه واقعاً؟ از کی؟ استراگم میگه یادم رفت. ولادیمیر از پسره میپرسه من تو رو قبلا دیدم مگه نه؟ دیروزم اومده بودی. پسره میگه نه آقا. ولادمیر میگه اولین باره که میای؟ پسره میگه بله آقا. آقای گودو گفت به شما بگم امشب نمیاد ولی فردا حتما میاد. ولادمیر میگه همش همین؟ پسره میگه بله آقا. ولادمیر میگه تو برای آقای گودو کار میکنی؟ بله آقا. بز می‌چرونم آقا. نمی زنتت. منو؟ نه آقا. برادرم رو میزنه آقا. برادرم داری پس. اون چی کار میکنه؟ بله. گوزفن میچرونه آقا. راضی هستی؟ نمیدونم آقا. نمیدونه راضی هستی یا نه؟ تازه شدی مثل خودم. با آقای گدو چی بگم آقا؟ بهش بگو... بهش بگو ما رو دیدی. تو ما رو دیدی دیگه ندیدی؟ بله آقا. پسر از صحنه خارج میشه. ناگهان شب فرا میرسه. ماه در واسه پیدا میشه و نور کمی بر صحنه میندازه. ولادیمیر میگه اینم از این. استراگون بلند میشه. یه لنگ پوتین در هر دستش داره و اونا رو, رو روی لبه صحنه میذاره. همینجا میذارمشون تا شاید یکی مثل من اما با پاهای کوچیک‌تر پیداش بشه و این پوتین ها خوشحالش کنه. ولادیمیر میگه اما پا برهنه که نمیتونی بری. استراگون میگه مسیح که ولادیمیر میگه این چه ربطی به مسیح داره؟ تو نمیتونی خودت را با مسیح مقایسه کنی. را میگه همه زندگیم خودم رو باهاش مقایسه کردم. سکوت می ولادیمیر میگه دیگه اینجا کاری نداریم. استراگوون میگه هیچ جا کاری نداریم. ولادیمیر میگه آخ گوگو اینطوری حرف نزن. فردا همه چیز درست میشه. مگه نشیددی اون بچه چی گفت؟ گفت گووه فردا حتما میاد استراگم میگه پس کل کاری که میتونیم بکنیم اینه که منتظر بمونیم. به درخت نگاه میکنه و میگه، مطبختی تیک تنابم نداریم. یادم بندوس فردا تیک تناب بیارم. ولادیمیر استراگون رو دنبال خودش میکشه. استراگون می‌پرسه الان چند وقتی که ما با همیم؟ ولادیمیر میگه نمیدونم شاید پنجاه سال. استراگون میگه صبر کن. از ولادیمیر دور میشه. بعد میگه که همش فکر می‌کنم بهتر نبوده اسم جداشیم. راه من و تو یکی نیست. میره روی تل می‌شینه. ولادیمیر میره کنار استراگون میشینه و میگه اگر فکر میکنی بهتره میتونیم از هم جدا بشیم. استراغام میگه حالا دیگه خیلی دیره. خب بریم. ولادیمیر میگه آره بریم. اینو میگن ولی تکون نمیخورن. روز بعد همون زمان همونجا پوتین های استراگون وسط صحنه هستند کلاه لاکی هم همونجاست درخت این بار 4 تا برگ داره ولادیمیر با حالتی آشفته وارد صحنه میشه و مدتی طولانی به درخت نگاه میکنه بعد یکی از پوتینا رو برمیداره بررسی میکنه و بو میکشه حالش به هم میخوره اونا رو همون جا میذاره و میاد سمت راست صحنه. یه شروع میکنه به خوندن. آشپز ما یه سگ از خوندن دست میکشه. گلوش رو صاف میکنه و دوباره شروع میکنه به خوندن. آشپز ما یه سگ داشت. اون سگ و خیلی دوست داشت. یه روز یه تیک گوشت خرید. گوشت رو روی تاقچه گذاشت. از خوندن دست میکشه و میره توی فکت. بعد دوباره شروع میکنه به خوندن سگه اومد گوشتر رو برد سرپا نشست گوشتر رو خورد آشپز اومد با ذر مشت، زد تو سر سگ اونو کشت لحظه ای ساکت میشه و بی حرکت میمونه بلند میشه و با بی قراری شروع به حرکت میکنه اسراگون پا برهنه و با سر خمیده آهسته وارد میشه ولادیمیر میبینه و میگه بازم تو بیا اینجا بغلت کنم. باز زدنت؟ شب را کجا گذروندی؟ استراگام میگه به هم دست نزن، سوال نکن، حرف نزن، پیشم بمون. ولادیمیر میگه که مگه هیچ وقت ترکت کردم؟ استراگون میگه نه، ولی گذاشتی من برم. مدت زیادی به هم نگاه میکنن. ناگهان همدیگر رو در آغوش میگیرن، به پشت همدیگه ضربه میزنن. ولادیمیر میگه کی زدت؟ هم بگو. استراغون میگه که شنیدم که آواز میخوندی. خیلی ناراحت شدم. به خودم گفتم فکر کرده من برای همیشه رفتم و آواز میخونه. میبینی وقتی من نیستم تو بهتر میشاشی. ولادیمیر میگه دلم وسط تنگ شده بود. در این حال خوشحال بودم. عجیب نیست. استراغون میگه خوشحال؟ ولادیمیر میگه حالا تو دوباره اینجایی. ما دوباره اینجاییم. من دوباره اینجا. استراگان میگه دیدی وقتی پیشت نیستم حالت بدتر میشه. منم تنهایی حال بهتری دارم. ولادیمیر میگه پس چرا برگشتی؟ نمیدونم. الان باید از ته دل خوشحال می بودی که برگشتی پیش من. بگو هستی. حتی اگه راست نباشه بگو من خوشحالم. من خوشحالم. منم همینطور. ما خوشحالیم. خب حالا که خوشحالیم چیکار کنیم؟ منتظر گدو میمونیم. از دیروز تا حالا یه تغییر کرده. این درخت رو ببین. استراگون به درخت نگاه میکنه و میگه مگه دیروز نبود اینجا؟ ولادیمیر میگه چرا؟ یادت نمیاد؟ نزدیک بود خودمون ازش آویزون کنیم، تو نذاشتی. یادت نمیاد؟ استراگون میگه خواب دیدی خیر باشه. یعنی ممکنه یادت رفته باشه؟ من اینم یا زود یادم میره یا اصلا یادم نمیره پوتسو و لاکی چی؟ اونام هم فراموش کردی پوتسو و لاکی؟ فقط یادم یه آدم خلوچلی به هم جفتک زد بعدم دلغکبازی درآورد بازی در لاکی بود دیگه اربابش یادت نمیاد؟ به هم استخون داد یعنی میگه همه اینا دیروز اتفاق افتاد ما دیروز هم همین جایی که الان هستیم بودیم ولادمیر میگه پس کجا بودیم یعنی تو این محل رو نمیشناسی؟ اسراگون میگه که نمیشناسم؟ چی هست که بشناسم؟ تمام زندگیم توی لجن قلط زدم اون وقت آقا از صحنه آرایی با من حرف میزنه به این تی که گوه نگاه کن من هیچ وقت ازش جدا نشدم مردشور تو و اون مناظرت رو ببرن با من از کرمها صحبت کن ولادیمیر میگه به هر حال نمیتونی به من بگی این محل مثلا, مثلاً شبیه کشور ماکنه خیلی با هم فرق دارن استراگون میگه یکی از کشور ماکن حرف زد ولادیمیر میگه ولی تو خودت تو کشور ماکن بودی استراگون میگه نه من هیچ وقت تو کشور ماکن نبودم بهت میگم تمام عمر نحسم و اینجا سفراخ کردم اینجا تو کشور کاکن ولادیمیر میگه ما با هم اونجا بودیم ما سه آدمی انگورچینی میکردیم اسمش یادت نیست، تو اونجا که اسمش، اسم اونجا رم یادم نیست، با تو هم نمیشه از یاد سرکر لذت گوگو. استراغام میگه شاید بهتر بود از هم جدا میشدیم. ولادیمیر میگه تو همش همینو میگی اما باز بر میگردی. استراگام میگه بهترین کار اینه که منو هم مثل اون یکی بکشی. ولادیمیر میگه کدوم یکی؟ استراغام میگه مثل میلیون ها نفر دیگه. یه سکوت طولانی برقرار میشه الباخره ولادیمیر میگه یه چیزی بگو استراگوم میگه دارم سعی میکنم حالا چیکار کنیم منتظر گدو میمونیم دوباره ساکت میشن تلاش میکنن به هر طریق و با هر جملاتی سکوت بینشون رو از بین ببرن استراگوم میگه بیا با هم مخالفت کنیم ولادیمیر میگه غیر ممکنه خطر فکر کردن دیگه هیچ وقت ما رو تهدید نمیکنه پس دیگه از چی بنالیم فیکس کردن بدترین چیز نیست. استراغام میگه شاید نه ولی بالاخره اون که هست. ولادیمیر میگه چی هست؟ استراگون میگه فکر خوبیه بیا از هم سوال بپرسیم. ولادیمیر میگه منظور چی از بالاخره اون که هست؟ استراگون میگه این بدبختی نه چندان زیاد. چطوره که بابت نعمت هامون شکرگزاری کنیم؟ ولادیمیر میگه وحشتناکه. استراگون میگه ولی اصلا برای این ما پیش اومده؟ ولادیمیر میگه این همه جسد از کجا میاد؟ اگه از منطق بین دیالوگ این دو نفر سر در نمیارید کاملا درست است. میگه این اسکلت ها. ولادیمیر میگه ولی این درخت دیروز غروب کاملا لخت و بود. حالا ظرف یک شب پر از برگ. استراگون میگه شاید بهار شده. ولادیمیر میگه ظرف یک شب. استراگون میگه بهت میگم ما دیروز اینجا نبودیم. این هم یکی از کابوس های توه. ولادیمیر میگه پس کجا بودیم؟ استراگون میگه چه میدونم توی زندان دیگه. جا که قهت نیست. ولادیمیر که از خودش مطمئن میگه قبول. ما دیروز اینجا نبودیم. حالا بگو دیروز چی کار میکردیم استراگون میگه م... بذار فکر کنم. آها. دیروز غروب با صحبت کردن راجب هیچ چیز به خصوصی وقت گذروندیم. این وضع نیم قرنه که ادامه داره. ولادیمیر میگه هیچ چیز غیر عادی توجهت رو جلب نکرد، پوتزو، لاکی؟ استراگون میگه نمیدونم. ولادیمیر میگه لگت یادت نیست؟ استراگون میگه درسته یه نفر بهم به لگت زد ولادیمیر میگه لاکی بود دیگه استراگون میگه همه اینا دیروز بود ولادیمیر میگه که پاتو نشون بده استراگون یه پاشو میده به ولادیمیر و هر دو تلو تلو, تلو میخورن ولادیمیر شلوار استراگونو بالا میزنه و به پاش نگاه میکنه بعد اونو رها میکنه استراگون تقریبا میفته زخمه داره چرک میکنه پوتین هات کجاست استراگون میگه انداختمشون دور میر پیروزمندانه به پوتین ها اشاره میکنه و میگه اوننا همون جایی که دیروز گذاشته بودیشون اسراگون به سمت پوتین ها میره و بررسیشون میکنه و میگه اینها مال من نیستن مال من سیاه بود اینا قهوه ایگن میگه آها اه یه نفر اومده پووتینهایی تو رو برداشته مال خودش رو گذاشته حتما مال خودش براش تنگ بوده اسراگون میگه ولی پووتین های منم تنگ بود وللادی میگه خب برای تو تنگ بود نه برای اون استراگون میگه من خستم. بیا بریم. نمیتونیم منتظر گدویم. حالا چیکار کنیم؟ هیچ کاری نیست که بتونیم بکنیم. تروب دوست داری؟ هویج نداری؟ نه، مصرف هویجت خیلی زیاده. پس یه تروب بده. ولادیمیر جیباشو میگرده به جز چلقم چیزی پیدا نمیکنه. بالاخره یه تروب بیرون میاره و میده به استراگون. استراگون بررسیش میکنه و بو میکشه و میگه اینکه سیاهه من فقط رو دوست دارم. تورپ رو پس میده و میگه من برم یه هویج پیدا کنم. ولی حرکتی نمی‌کنه. ولادیمیر میگه حداقل امتحانشون می‌کردی. استراگون میگه من همه چیزو امتحان کردم. ولادیمیر میگه منظورم پوتین هاست. استراگون میگه کمکم می‌کنی؟ ولادیمیر میگه معلومه که می‌کنم. استراگون میگه رفتار ما با هم بد نیستا، ندیدی؟ همیشه چیزی پیدا می‌کنیم که باعث میشه احساس کنیم زنده‌ای. ولادیمیر با بی‌حوصلگی میگه درسته ما جادوگریم ولی بذار اول مشکل خودمون رو حل کنیم. پوتینو بر میداره و میگه پاتو بده به من. استراگون پاشو بلند میکنه، چسبیده به هم دیگه دور صحنه تلو تلو میخورن. بالاخره ولادیمیر موفق میشه پوتین رو پای استراگون کنه. استراگون میگه اندازه است. ولادیمیر از جیبش بندی در میاره و میگه بیا بندش کنیم. استراگون با تندی میگه: "نه، نه، بند نمیخواد." بعد میره رو روی تل میشینه و سرشو میذاره رو زانوهاش. ولادیمیر براش لالایی میخونه تا خوابش ببره. بعد کتش رو میندازه روی استراگون و خودش بلند میشه، راه میره و بازوهاشو تکون میده تا گرم کنه خودشو. استراگون سراسیمه از خواب میپره و به اطرافش نگاه میکنه. ولادیمیر بهش نزدیک میشه و بغلش میکنه و میگه جانم جانم نترس من اینجا استراگون میگه داشتم میافتادم از بالای یه ولادیمیر وسط حرفش میپره و میگه تعریف نکن برام بیا قدم بزنیم تا یادت بره یکمی راه میرن تا اینکه استراگون خسته میشه ولادیمیر میگه ترجیح میدی بچسی همونجا و کاری نکنی استراگون میگه آره ولادیمیر استراگان رو رها میکنه و کتش رو میداره پوشه میگه که بیا بریم ولادیمیر میگه نمیتونیم باید منتظر گدو باشیم استراگون که حسابی از این وضعیتشون کلافست میگه من رفتم ولادیمیر کلاه لاکی رو میبینه و میگه اینو کلاه لاکی یه ساعت اینجا بودم و اینو ندیدم عالیه استراگون میگه خداحافظ دیگه هیچ وقت من رو نمیبینی ولادیمیر بی توجه به استراگون میگه میدونستم محلو درست اومدم. کلاهو برمی‌داره، صاف و سوفشش می‌کنه و میگه احتمالاً کلاه قشنگی بوده. کلاهو میذاره روی سر خودش و کلاه خودش رو میده دست استراگون. استراگون کلاه ولادیمیرو رو روی سر خودش و کلاه خودش رو میده به ولادیمیر. ولادیمیر کلاه استراگون رو به جای کلاه لاکی می‌ذاره روی سرش و کلاه لاکی رو میده به استراغون استراگون کلاه لاکی رو سرش و کلاه ولادیمیر رو میده بهش و این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. در نهایت استراگون کلاه ولادیمیر رو بهش پس میده. ولادیمیر هم که کلاه لاکی سرشه، کلاه خودش رو میگیره و روی زمین پرت میکنه. ولادیمیر میگه که بهم به میاد سرشو با عشوه این بر اون بر میچرخون انگار مدله. استراگون میگه چه زشت. ولادیمیر میگه ولی از قبلی که بهتره. استراگون میگه نه بیشتر نه کمتر. ولادیمیر میگه پس نگهش میدارم. مال خودم اذیتم میکرد. به خارش میانداختم. کلاه لاکی رو بر داره داخلش رو نگاه میکنه تکون میده ضربه ای بهش میزنه و دوباره میذاره سرش استراگون میگه من رفتم ولادیمیر میگه بیا بازی کنیم میتونیم بازی پوتسو و لاکی بکنیم من میشم لاکی تو میشی پوتسو ادای حرکات لاکی رو در میاره جوری که زیر بارهاش خم شد استراگون هاج و واج نگاهش میکنه بعد میگه من باید چیکار کنم ولادیمیر میگه که بهم به فوش بده استراگون بعد از کلی فکر میگه که شیطون ولادمیر میگه به هم بگو فکر کن بگو فکر کن خوک استراگون میگه فکر کن خوک ولادمیر میگه نمیتونم استراگون میگه این بازی دیگه بس من رفتم ولادمیر میگه برقص خوک اخته استراگون از صحنه خارج میشه اما یهو نفس نفسنان وارد میشه و سری به سمت ولادمیر میره و خودشو میندازه توی بغلش نفس نفس زنان میگه بدبخت شدم دارم میاد. ولادمیر میگه کی استراگون میگه نمیدونم ولادمیر میگه چند نفرن استراگون میگه نمیدونم پیروز پیروزمندانه میگه به بالاخره اومد نجات پیدا کردیم استراگون خودش از دست ولادمیر رها میکنه از سمت راست صحنه خارج میشه دوباره نفس نفس سنان وارد میشه و باز خودش رو میندازه ولادمیر ولادیمیر خود به سرم شد از اون طرفم دارم میاد ولادمیر میگه راه چاره اینه که قایم بشی استراگون میگه کجا ولادمیر میگه پشت درخت استراگون مردده اما میره پشت درخت و قایم میشه ولی خیلی زود متوجه میشه که هنوز در معرض دیده. از پشت درخت میاد بیرون میگه که این درختم که به درد هیچ چی نمیخوره. منو ببخش گیج شده بودم. استراگون ولادیمیر رومی بر سمت راست صحنه و خودش میره سمت چپ تا نگهبانی بدن. یه سرشون رو برمیگردونن به هم نگاه میکنن برای لحظه‌ای به نگاه کردن هم دیگه ادامه میدن و مجددن نگهبانی رو از سر میگیرن. استراگون میگه ندیدی که کسی بیاد؟ ولادیمیر هم میگه نه. دوباره ساکت میشن و همزمان با هم بر برمیگردن و میگن تو ولادیمیر میگه آه ببخشید استراگون میگه بفرمایید هی تعارف میکنن که آخرش اون جفتشون عصبی میشن ولادیمیر میگه میمون پرفیسو ifade استراگون میگه خوک عسا قورت داده ولادیمیر عصبی میگه بهت میگم حرفتو تموم کن استراگون میگه خودت حرفتو تموم کن به هم نزدیک میشن ولادیمیر میگه کودن استراگون میگه فکر خوبیه بیا با هم فحش بدیم شروع میکنم به بد و بیراه گفتن به هم دیگه کودن انگل ایکپری موش فاضلاب منتقد این آخری رو استراگون گفت ولادیمیر شکست خورده میگه وای استراگون به سمتش میره و همو در آغوش میگیرن ولادیمیر میگه وقتی به آدم خوش میگذره زمان چه سری میگذره استراگون میگه حالا چیکار کنیم ولادیمیر میگه بیا برای حفظ تعادلمون مثل این درخت عمل کنیم ولادیمیر مثل درخت روی یه پا میسته و تلو تلو میخوره و میگه نوبت توه استراغان هم همین کارو میکنه و میگه فکر میکنی خدا منو میبینه وای میسته و با صدای بلند میگه خدایا به من رحم کن پوزو که حالا کوره به همراه لاکی وارد صحنه میشه لاکی مثل قبل بارها رو به دوش میکشه تناب هم مثل قبله ولی خیلی کوتاه در طوری که پوزو راحت تر دنبالش بره لاکی کلاه دیگه روی سرشه در مقابل استراغون و ولادمیر میر وای میسته پوتسو که داره راهشو ادامه میده به لاکی که تلو تلو میخوره چنگ میدازه و میپرسه چیه؟ کیه؟ لاکی با همه وسیله ها میفته و پوتسو رو هم همراه خودش میدازه جلوی ولادمیر و استراغون متوقف شدن بی حرکت وسط وسیله های ریخته شده دراز میکشن استراگون میگه این گودوئه ولادیمیر میگه بالاخره اومد دیگه داشتیم از حال میرفتیم ها حالا مطمئنیم که این گروه به سر میرسه پوتسو میگه کمک رحم کنید استراگون میگه ولی میدونستم گودوئه ولادیمیر میگه ولی این تو گودو نیست پوتسو پوتسو میگه من اینجام اینجام کمک کنید بلند شم میگه بیا بریم ولادیمیر میگه نمیتونیم باید منتظر گودو بمونیم شاید این یارو یه یا استخونه دیگه به داد به خودش میپیچه ناله میکنه و به زمین مشت میکوبه استراگون میگه اول ازش استخون بخوایم نداد هم اینجا ولش کنیم ولادیمیر میگه کاملا هوشمندانه به نظر میاد ولی من از یه چیزی میترسم ممکن لاکی یهو شورش کنه اون وقت ما کله پا میش میگه لاکی ولادیمیر میگه همونیه که دیروز کوتکت زد استراگون میگه اینجاست مگه ولادیمیر به لاکی اشاره میکنه میگه اینها پوتسو هنوز با ناله داره کمک میخواد. استراغا میگه چطور دو نفری حسابی بزنیمش یا بهش کمک کنیم؟ ولادیمیر میگه بیا وقتمون رو با این بحثای بیهوده تلف نکنیم. بیا تا فرصت هست کاری کنیم. هر روز که به وجود ما نیاز نیست. این ناله های کمک که میشنویم خطاب به همه بشریته. در این لحظه خاص همه بشریت خواه ناخواه ما هستیم. بیا یک بارم که شده به بهترین وجه نماینده این نژاد متعفنی باشیم که تقدیر ظالمانه ما رو بهش منتصب کرده. چی میگی؟ راستش وقتی های مثبت و منفی قضیه رو بررسی کنیم متوجه میشیم که دیگه کوچیک‌ترین دینی به هم‌نوعانمون نداریم. ببرها برای کمک به هم‌نوعانشون یا بدون هیچ مکسی هجوم میبرند یا به اعماق بیشه فرار میکنن اما مسئله این نیست. مسئله اینه که ما اینجا چی کار میکنیم؟ خوشبختی ما در همینه. بله در این اوضاع مخشوش فقط یک چیز مسلمه اینکه ما منتظر گدو هستیم تا بیاد پوتسو میگه کمک اما ولادمیر هیچ توجهی نداره و داره سخنرانی میکنه یا منتظر اینکه شب سر برسه ولی ما سر قرارمون موندیم و این دیگه آخر خطه ما قدیس نیستیم ولی سر قرارمون موندیم چند نفر میتونن اینقدر به خودشون ببالن ما سر قرارمون موندیم استراگون میگه میلیون ها نفر ولادیمیر بازم شروع میکنه به فلسفی حرف زدن. کاملا میدونم که تحت این شرایط ساعت دیر میگذره و مجبورمون میکنه با اتفاقاتی تلفش کنیم تا وقتی که به عادت تبدیل بشن. شاید نه از این میشه که منطقمون لنگ بزنه. شکی درش نیست. ولی آیا همین عقل و منطق نبود که در این مدت طولانی، در این شب بی انتهای سرگردان بود، اسراگان با کلمات قصار میگه همه ما دیوانه به دنیا میاییم. همونطور باقی میمونن. پوتسو میگه کمک پولشو میدم استراگا میگه چقدر پوتسو میگه دو شیلینگ استراگا میگه کافی نیست پوتسو فریاد میزنه 5 تا 5 شیلینگ ولادیمیر دستاشو بالا میاره میگه ما منتظریم خیلی کسلیم یه مشغولیتی پیدا میشه ولی ما چیکار میکنیم میذاریم تا تلف شه میگه 200 تا ولادیمیر بالاخره با این مبلغ نر میشه سعی میکنه پوتسو رو بلند کنه اما نمیتونه چلوتلو میخوره و خودش هم میافته. سعی میکنه بلندشه، بلی نمیتونه. استراغام میگه شماها چه مرگتون شده؟ ولادیمیر با ناله کمک میخواد. استراغام بیخیال میگه من رفتم. ولادیمیر میگه تنها نظر. اینا منو میکشن. اول به من کمک کن، بعد با هم میریم. استراگون میگه قول میدی، هیچ وقتم برنمیگردیم. ولادیمیر میگه هیچ وقت. میگه ده شیلینگ، یک پوند، اما تصمیمشو گرفته و میخواد. بره. ولادیمیر میگه خیلی خوب. فکر میکنم آخرش باید خودم باید با زور از جا پاشم. سعی میکنه ولی میفته. استراگون میگه گورتو گم کن. استراگون میگه همینجا میمونی؟ ولادیمیر میگه فعلا که هستم. استراگون میگه بلند شو میچای. دستشو دراز میکنه و ولادیمیر سعی میکنه سری دستشو بغاپه. استراگون که سعی میکنه ولادیمیر رو بلند کنه، تلو تلو میخوره و خودش هم روی زمین. ولادیمیر میگه سایکون بلندش استراگون میگه نه الان نه چطور یه چورت بخوابیم. سکوتی برقرار میشه و اسراگون خوابش میبره پوتسو میگه رحم کنید رحم کنید استراگون از جا میپره ولادیمیر میگه بازم این پوتسو یه بود استراگون میگه بهش بگو بس کنه یه لگد بزن در چیزش ولادیمیر پوتسو رو میزنه پوتسو ناله میکنه و خودش رو عقب میکشه کورکورانه هوا رو چنگ میزنه و کمک میخواد. بعد هم از حال میره. ولادیمیر صداش میزنه اما جوابی نمیاد. با هم صداش میزنم ولی باز هم چیزی. استراگون میگه مطمئنی اسمش همینه؟ ولادیمیر میگه میترسم مرده باشه. استراغام میگه بیا با اسمای مختلف صداش کنیم. هم وقت میگذره هم دیلیازود اسم واقعیشو میفهمیم. ولادیمیر میگه بهت میگم اسمش پوتسوئه. استراگون میگه حالا میبینیم. فکر میکنه و میگه هابیل هابیل پوتسو به هوش میاد با ناله میگه کمک کمک استراگون میگه زدم تو خال شاید اسم اون یکی هم قابله. قابل قابل ولادیمیر و استراگون سعی میکنن بلندش و این بار میتونن استراگون میگه چه ساده بود ولادیمیر میگه همش به قدرت اراده مربوط بود پوتسو همچنان کمک میخواد ولادیمیر و استراگون این دفعه میرن کمکش و بلندش میکنن اما پوتسو بازم میفته دوباره بلندش میکنن پوتسو مابینشون تلو تلو میخوره و دستاشو دور اونا حلقه میکنه و میپرسه شما کی هستین ولادیمیر میگه نمیشناسیمون پوتسو جواب میده من کورم ولادیمیر میگه از کی پوتسو میگه قبلا دیده عجیبی داشتم ببینم شما دوستین نکنه دوزای سر و باشین استراگون با اخم میگه ماشبیه دوزداییم ولادمیر میگه مردشور برده مگه نمیبینی میگه کورم پوتوم میگه ساعت چنده ولادمیر به آسمون نگاه میکنه و میگه هفت، هشت. 8 بسگی داره چه موقعی از سال باشه پوتوم میگه غروبه استراگون و ولادیمیر غروب آفتاب رو زیر نظر میگیرن تا بفهمن اختلاف نظر دارن که سحر یا غروبه ولادیمیر در نهایت میگه غروبه آقا غروبه دوستم منو به شک انداخت ولی این روز طولانیو بی سر نکردم نزدیک شب از پودسو میپرسه یه دفعه اینجوری شدین؟ پوتسو میگه یه روز پاشدم دیدم کورم. اینه سرنوشت. کای وقتا میگم نکنه هنوز خوابم. ولادیمیر میگه کی بود؟ قبلتر از دیروز که نبود. پوتسو میگه از من سوال نکنید. آدم کور هیچ تصوری از زمان نداره. ما کجاییم؟ بر و نگاه میکنه و میگه نمیشه توصیفش کرد. شبیه هیچ چی نیست؟ هیچی چی وجود نداره فقط یه درخت پوتسو میگه کجاست این نوکر من کجاست وقتی صداش میزنم جواب نمیده ولادیمیر میگه نمیدونم انگار خوابیده شاید هم مرده پوتسو میگه ببینید سالمه اون تنه بکشید نه اونقد که خفه ها معمولا به این حرکت واکنش نشون میده اگه جواب نداد بعد بهش لگت بزنید مثلا توی صورتش یا توی رودش به ولادیمیر میگه چشمت به هم باشه و بعد میره سمت لاکی. وقتی متوجه نفس کشیدن لاکی میشه یک باره با خشمی ناگهانی شروع به زدن لاکی میکنه و همزمان بهش بد و هم میگه. اما خیلی زود پاش درد میگیره و لنگ لنگان کنار میره. میره روی تل میشینه تا پوتینشو در بیاره. اما تسلیم خواب میشه. دستاش روی زانوشه و سرش روی دستاش. بعد میخوابه. ولادیمیر به پوتسو میگه ما دیروز هم دیگر رو دیدیم یادت نمیاد پوتسو میگه من یادم نمیاد دیروز کسیو دیده باشم فردا هم یادم نمیاد که امروز کسیو دیدم پس در این مورد نمیتونم بهتون کمک کنم ولادیمیر میگه ولی شما این رو میبردید بازار بفروشید. داره لاکی رو میگه با ما حرف زدید ما سمون رقصید فکر کرد شما بینا بودید پوتسو بی اعتنا میگه هرجور مایلید بذارید من برم رو به لاکی با صدای بلند میگه بلند شو. لاکی بلند میشه و بارو بندیل رو جمع میکنه. و علاق رو دست پوتسو میده و جلوش وای میسته. ولادیمیر میپرسه تو چمدونات چیه؟ پوتسو میگه ماسه. ولادیمیر میگه نرید. اگه با زمین بخورین چکار میکنین؟ پوتسو میگه صبر میکنیم تا وقتی بتونیم بلند شیم. اون وقت دوباره راه میافتیم. ولادیمیر قبل از اینکه برن میگه بلکه بگین آواز بخونه، پوچم میگه آواز بخونه، اون لاله، اون حتی نمیتونه ناله کنه. ولادیمیر با تعجب میگه لال، از کی؟ پوچو یه ها عصبی میشه و با خش میگه شما هم با این زمان کوفتیتون همه شکنجه میدین، نفرت انگیزه، کی،, کی کی کی، یک روزی، این بس نیست، یک روز شبیه هر روز دیگری، یه روز اون لال شد، یه روزیم من کور شدم، یه روزیم کر میشم، یه روزی زاده شدیم، یه روزیم میمیریم. این بس نیست واسهتون لاکی و پوتسو از صحنه خارج میشن ولادیمیر رفتنشون رو نگاه میکنه صدای افتادن دوباره شون شنیده میشه ولادیمیر به سمت استراگون برمیگرده تکونش میده تا بیدارش کنه استراگون وحشت زده بیدار میشه و میگه چرا هیچ وقت نمیذاری یه چرت بزنم ولادیمیر میگه احساس تنهایی میکردم داشتم خواب میدیدم داشتم خواب میدیدم خوشبختم تعریف نکن برام نمیتونم واقعا کور بود یا نه که انگار اصلا یادش نیست میپرسه کور کی؟ ولادیمیر میگه که پوتسو به ما گفت کوره ولی به نظرم میدید استراغان میگه خواب دیدی بیا بریم بعد یادش میاد که منتظر گودوان اه نمیتونیم مطمئنی گدو نبود ولادیمیر میگه اصلا اصلا اصلا نمیدونم به چی فکر کنم نکنه وقتی خواب بودم دیگران رنج میکشیدن. نکنه الان خواب باشم فردا وقتی بیدار شدم یا فکر کردم که بیدار شدم در مورد امروز چی بگم اینکه با دوستم استراگون اینجا تا سر شب منتظر گودو بودیم اینکه پوتسو از اینجا رد شد و صحبت کردیم تو همه اینا چه حقیقتی وجود داره استراگون با پوتینش ور میره و چرت میزنه ولادیمیر نگاهش میکنه و میگه اون هیچی نمیدونه با من درباره کتک هایی که خورده حرف میزنه و منم یه هویج بهش میدم بین گور و تولد نحسمون ول معتلیم ای که با هزار زحمت سرما رو میگیره همون قبرکن ماست ما فرصت داریم پیر بشیم هوا پر از ناله های ماست ولی عادت گوش ما رو بچوری سنگین میکنه به پسرドラゴン نگاه میکنه و ادامه میده این هیچی نمیدونه بذار بخوابه من نمیتونم برم بیقرار توی صحنه قدم میزنه بعد وای میسه و به فکر فرو میره از گوشه صحنه یه پسر بچه وارد میشه ولادیمیر میگه باز باید راه بیفتیم. تو منو نمیشناسی پسر میگه نه آقا تو نبودی دیروز اومدی نه آقا از آقای گودو پیام داری بله آقا امشب نمیاد نه آقا ولی فردا حتما میاد بله آقا آقای گودو چی کار میکنه کاری نمیکنه آقا برادرت چطوره مریض آقا شاید اون بود که دیروز اومد نمیدونم آقا آقای گودو ریش داره بله آقا سفید یا سیاه فکر کنم سفید آقا خدایا به همون رحم کن با آقای گودو چی بگم آقا بهش بگو که منو دیدی تو مطمئنی منو دیدی فردا نیایی بهم بگی اصلا ندیدم تا یهو یه به جلو میپره پسر جاخالی میده و میدوه میره بیرون خورشید غروب میکنه و ماه میاد بالا دراگون از خواب بیدار میشه پوتیناشو بر می داره و میاره جلوی صحنه میذاره میگه من دارم میرم ولادیمیر میگه منم همینطور اسراگون میگه درسته ولی بیا بریم اون دور دورا ولادیمیر میگه نمیتونیم. باید فردا برگردیم و منتظر گودو باشیم. استراغام میگه آها نیومد. حالا دیگه خیلی دیر شده. ولادیمیر میگه آره دیگه شب شده. استراغام میگه اگه قیدشو بزنیم چی؟ ولادیمیر میگه ما رو مجازات میکنه. استراغام و ولادیمیر میرن زیر درخت. استراغام میگه چرا خودمونو دار نزنیم؟ بند تنبونم هست. تو قلاب بگیر من برم بالا. ولادمیر میگه پس کی برای من قلاب بگیره؟ سراغام میگه درست میگی. بندی رو که شلوارش رو باهاش نگه داشته در میاره. شلوارش که خیلی گشاده براش میفته. ولادمیر به بند نگاه میکنه و میگه حالا اون بنده محکم هست یا نه؟ سراغام میگه بیا اینجا الان میبینیم. هر کدوم یه سر بندو میگیرن و میکشن. بند پاره میشه هر دو میفتن. استراگون میگه گفتی فردا باید برگردیم ولادیمیر میگه آره استراگون میگه پسیتی که تناب خوب میاریم هر دو سکوت میکنند استراگون میگه دیدی من دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم اگه از هم جدا شیم چی شاید واسه هر دومون بهتر بشه میگه می فردا خودمونو دار میزنیم میگه اینکه گدو بیاد کلاهش که مال لاکی از سر بر می داره داخلشو نگاه میکنه توشو دست میکشه تکونش میده به فرقش تلنگور میزنه و میذاره سرش میگه خب بریم استراگون میگه آره بریم بعد از جاشون تکون نمیخوره چیزی که شنیدید نمایشنامه در انتظار گودو اثر ساموئل بکت بود. همونطور که در مقدمه اپیزود گفتیم، آثار بکت و به خصوص همین نامش جزء آثاریه که اونا رو پایه تئاتر ابزورد میدونند. در سال 1960 فردی به نام مارتین اسلین مقاله نوشت با عنوان تئاتر ابزورد و توش اشاره کرد از تعدادی نمایشنامه های, های در ده های چهل و پنجاه میلادی که مستقل از هم نوشته شدن، همگی تمه ابزورد دارند کلمه ابزورد و ابزوردیزم با اسم آلبرت کامو و مقاله افسانه سیزیفش گره خورده. ساده بخوایم بگیم کامو در افسانه سیزیف میگه جهان به معنای حقیقی و واقعی پوچه. اما ما انسان ها محکومیم به اینکه براش معنایی پیدا کنیم و هیچ وقت هم موفق نمیشیم و این دوگانگی و تضاد همیشه قرار ما رو آزار بده سه راه برای مواجهه با این قضیه پیشنهاد میکنه یک خودکشی دو انکار و سه که به نظر کامو بهترین راه حل پذیرشه اون هم نه به شکل بدبینانه و منفعل بلکه پذیرش فعالانه و به مسابه اسیان در برابر این جهان پوچ و در آغوش کشیدن آزادی و آرامشی که این پذیرش همراه خودش میاره یعنی ما میپذیریم این جهان پوچه ولی نه خیلی بدبینانه اومون فعلانه بلکه خیلی فعالانه میپذیریم این جهان پوچه و باهاش کنار میائیم اسلین هم با استفاده از همین نکته در کتاب تاعتر ابزورد مینویسه ت تماشاچیان رو با حقیقت سخت وضعیت انسان رو در رو میکنه اما هدفش دلسردی و ناامیدی نیست هدفش پذیرش وضعیت انسان در جهان به همون پوچی و بی معنایی که هست و قبول تنهایی آدمی در این جهان بی معناست دور ریختن باورها و توهمات آرامش بخش مثل باورها و خوشبینی به جهان ممکنه سخت باشه، اما حس آرامش و آزادی رو به همراه میاره. به همین دلیله که هدف تئاتر ابزورد برآوردن عشقهای از سر دلسردی نیست، بلکه خنده از سر آزادی و رهایی اسلین تو مقاله اولیه خودش رو آثار چهار تا نمایش نام نویس مانور میده و اونها رو بنیانگذار تئاتر ابزورد میدونه. جان ژنه آرتور آداموف، اوژن یونسکو و ساموئل بکت. در نمایشنامه های همه این نویسنده ها، کاراکترها در دنیای عجیب و درک نشدنی زندگی می کنند. اتفاقاتی که می مسخره و عجیب غریبه و دیالوک ها تکراری و بدون معنا هستند. تقریبا شبیه همین دنیایی که داریم توش زندگی می کنیم. برای مثال تو همین نمایشنامه ای در انتظار گدو، دو تا کاراکتر اصلی ولادیمیر و استراگون محکومن تا ابد منتظر کسی باشن که نمیاد و توی چرخه پوچ و نامحدود گیر درست شبیه وضعیت سیزیف در افسانه سیزیف که محکوم هر روز سنگی رو تا بالای قله کوه ببره و بعد پایین غلطیدنش رو تماشا کنه و بعد دوباره فردا همون سنگ رو به بالای قله کوه ببره. اسراغون و ولادیمیر در مورد راه که کامو برای مواجهه با پوچی پیشنهاد میده هم حرف میزنن. میخوان خودشون رو از درخت دار بزنن. این همون راه خودکشی کاموه. بعدش مدتی پوچی و مسخرگی وضعیتشون رو انکار میکنن. اما این رازیشون نمیکنه. مخصوصا اسراغون انگار بهتر متوجه مسخرگی اوضاعه و مدام بیقراری میکنه. ولی به نظر نمیاد هیچ وقت به مرحله پذیرش عوضا رسیده باشن هیچ وقت نتونست این پوچی رو بپذیرن و بهترین راه حل رو پیدا نکردند. برداشای دیگه ای که میشه کرد نبود خدا در دنیای مدرنه در واقع گده ای که این دو نفر منتظرشن تا بیاد و زندگیشون رو بهتر کنه نمادی از خداست نمادی از یک ناجیه که هیچ وقت هم قرار نیست برسه و این پیام نمایشنامه به نظرم اونقدر روشنه که اصلا خیلی لازم نیست راجبش حرف بزنیم چون همه میدونیم سر نجات دهنده چه بلایی اومده شما هم برداشت و نظرتون رو درباره این نمایشنامه برای ما و مخاطبان علف بنویسید شاید بحثای خوبی درباره این اثر تو کامنت های همین اپیزود شکل گرفت یه بار دیگه از سعیده جهان دیده نویسنده متن از مهدیث سفری کسی که متن رو ویرایش کرد و از سینا سعدی برای تدوین این اپیزود ممنونم خیلی زود با فصل سوم برمیگردیم من مهدی هستم و شما قسمت بیستم پادکست الف رو که در 1404 تولید شده شنیدید تا فصل آینده این پادکست این نقش ماند از غلمت یادگار عمر میت‌نایت کاست